سخنرانی دکتر محمد اشجعی گرمارودی موضوع سخنرانی بحث پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه جلسه ششم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و والسلام علی سیدنا و نبینا محمد الله آله تعبین التحرین المحسومین ما عبدي الله في الأرزين اللهم انت السلام و السلام ولك السلام وإليك يهود السلام سبحان ربك رب عما يصفون و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك ایوها النبی و رحمت الله و برکت السلام علی الامت الحادین المهدیین السلام علی جميع انبیاء الله و وملائكته و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علیه و علی بن الحسین زین العابدین. السلام علیه محمد بن علي باقر علم النبيین. السلام علیه جعفر بن محمد الصادق السلام علیه موسى بن جعفر النكاظم. السلام علیه و علی بن الرضا. السلام على محمد ابن علي الجباب السلام على علي ابن محمد الحادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العبدي السلام على العباس ابن الحسن القائم المحشي السلام عليك يا عبد الله وعلى الارباح التي حلت بحنايك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت و بقي الليل و ولا جعل الله اخر من مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين, الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام انما خرجت لطلب الإسلام في امه جدي قرید و, و عمر بالمعروف و عن ان المنکر و سیره به سیرت و عبی در ارزه که اصلاح بعد از افصاد معنا پیدا می کند اگر بدنی بیمار نباشد معالجه بدن معنا ندارد و اگر در یک مکتب نظام فکری و در یک آین و مذهب آلودگی و تحریف و فساد اعتقادی و عملی و اخلاقی پیش نیامده باشد کلمه اصلاح را نمیتوان بکار برد اگر امام حسین علیه السلام میفرمایند واقعه کربلا را با توجه به این است که اون همه جانخراش دردناک جانسوز بوده است که به قیمت جان ثبت پیانبر و خاندان اطرت و یاران و اصحاب ارزنده اون حضرت تمام شود و همچنین ناموس دهر زینب کبرا سلام الله علیها و خاندان پیانبر به اثارت رود این چه فسادی بوده است نیازمند این همه نیرو صرف کردن و این همه مشکلات و گرفتاری ها رو تحمل نمودن بوده است تا اصلاح صورت بگیرد اگر بدن یک انسان بیمار است در این حد سردردی دارد دلدردی دارد با یک مسکن با کمی استراحت. است امکان از میان رفتن آن که سالت باشد بستری شدن در بیمارستان رفتن و برخی از مشکلات بیشتری رو تحمل نمودن لازم ندارد ولی اگر بیعوش میکنند به اتاق عمل میبرند چاقو به بدن میگذارن جراحی میکنند مسلما این بیماری به حدی رسیده است که لازم است این انسان کار و تلاش و فعالیتش رو کنار بگذارد و مدتی اون رنج و مشکلات بیهوشی را بعد از به آمدن تحمل کند مشکلات جراحی را بپذیرد چرا؟ چون کسالت به حدی رسیده است که معالجه این کسالت جز با این مقدار از نیرو سرد کردن راه دیگری ندارد انسانی که دست خود را چقدر دوست می‌دارد، پای خود را چقدر نیاز دارد ولی اگر قده سرطانی به دست یا پا پیدا شد و اطبا در معالجه این انسان به این نتیجه رسیدند اگر این دست را قطع نکنند و این پا را نبرند امکان این که این قده به بقیه بدن سرایت کند و این انسان را از میان ببرد هست عقل و علم و منطق و شرع حکم می‌کند همین دسته با تمام ارزش بریده شود همین پا با تمامی نیازی که به او داریم قطع شود در جامعه اسلامی چه بیماری پیدا شده بود که امام حسین علیه السلام برای معالجه این بیماری برای اصلاح امت معتقده به قرآن اون همه مشکلات و شدائد و گرفتاری ها را تحمل می کنند که به فرموده امام صادق علیه السلام و السلام لا یوم اگر اون همه گرفتاری ها برای تمامی انبیا در طول تاریخ اتفاق افتاده تا اونجا که به نقل تاریخ یک روز هفتاد پیغمبر از انبیای بنی اسرائیل را گردن زدند اون همه جنایت نسبت به حضرت یحیی و دیگران روا داشتند اما پیغمبر میفرمایند هیچ نبیی به اندازه من عذیت نشده است ولی همین نبی وقتی سخنت تربلا و آشورا و امام حسین به میان می آورد مصائب وارده بر ابی عبدالله و مشکلات کربلا را از عذیتهای خود بالاتر می داند. یعنی مسئله کربلا و آشورا مصیبت و مسائب وارده بر اهل البيت از تمامی اونچه که بر همه انبیاب و اولیاب وارد شده بالاتر است سختتر است دردناتر از طبق بیان محسومین و طبق دضاوت عقل اگر انسان به بررسی بنشیند، پس نشون می‌دهد مشکلی را که عبی عبدالله با مواجه بوده و برای ازمیان بردن اون ناب همه این گرفتاری ها را خاصه تحمل کنه اون باید مهم بود. از دید قرآن کریم دیدیم مسئله تحریف دین، مسئله اختلاف در امت ایجاد کردن بر مبنای بعضی و مختلف و فیه الا اللذین اوتوح من بعد ما هم البینات بعدیان بینهم، وقتی باغیان و یاقیان و تاقیانی که میخواهند در امت اختلاف ایجاد کنند مردم را از حق به کنار ببرند این رو قرآن پیش بینی می‌کند در قالب مثال ارز کنم اگر یک معلم دلسوخته‌ای وارد کلاسی شود به تعدادی از شاگردان حقایقی را بیاموزد انها را از اختلاف نسبت به حق و گرفتاری جه نجات بخشد ذمنی که پای تخت رفته و مینویسد جزوه می دهد. مطالب را مشخص می کند. اما در این حال می‌داند یک شیاطینی در میان شاگردان به لباس شاگرد خود رو جا دادن حال که معلم سر کلاس است ارزندامی نمی کنند. سخنی نمی گویند ها و هقده ها و نقشه های را در سینه و درون پنهان کردن تا معلم از کلاس خارج شود آن زمان فرصت رو غنیمت بشمارند، شمارن فرصت طلبان دنیا خواه در همین کلاس حتی نسبت به مطالبی که همون معلم آموخته اختلاف ایجاب کند مطلب رو لوس کند شاگردان را دوباره دچار دو گرفتاری نماید چرا؟ چون از آب گلالود ماهی بگیرد لذا هم خدا این تذکر رو داد اینجا دلاتشبی اگر معلم این را سر کلاس بداند همان گونه که با کتاب دادن و جزوه دادن و سر کلاس مطلب رو برای بقیه روشن می کند تذکر نسبت به غیبت خود هم خواهد داشت من اگر از کلاس رفتن بیرون شیاطینی خواستند در این کلاس مطالب مرا لوس کنم و به شکل دیگری به خورده شما بدهم بدانید مطلب این است و من ایکس را جای خود نشوندم، از او بپرسید نظر مرا بهتر میداند آیا خدایی که خود در قرآن بیان میدارد میخواهند دین را تحریف کنم فکری برای بعدت از پیغنبر نمی آیا پیغنبری که خود فرمود بناس دین مرا انقدر لوس کنند که من در کنار کوثر میبینم دسته دست از مردمی که به نام مسلمان بودن به سوی جهنم می روند طب نقل صحیح بخاری و صحیح مسلم و من میگویم خدا یا این ها از امت من بودن اند ندام یاد نمی بعد از تو چه کردن چه از اسلام برای آنها باقی مرد هرو پیغمبر می مگر نقل نکردم پیغمبر با علی در نقل سنن مدینه عبور می کند پدیه می فرماید درخت ها و مذبع زیوان پیغمبر گریه می کند رسول خدا میفرماید اون عقده هایی که در همین مدینه به سر سخالی خواهند کرد او زیبایی برای مدینه باغینه می گذارد. وقتی اینها رو پیغمبر میفرماید اشاره می کند پس چه باید کرد بعد از رهلت پیغمبر؟ پیغمبر چه کرد، خدا چه کرد، ما در طول تاریخ باید چه کنیم؟ این رو رسندیم به دنیا که هم پیغمبر این رو فرمود، هم خدا تشویقش می‌کرد، هم ناظرین به حق و شاهدین دقیق تاریخ بعد از ولادت پیغمبر برای ما بیان داشتن زمینی که وقایع را گفتند راه درمان را هم برای ما بیان داشتن اولین ناظری که جان خود را برای این کار گذاشت حضرت زهران سلامالله ها بود حضرت زهران برای چه شه شهیده شد مگر غیر از این بود که بعد از رهلت رسول خدا متوجه شد اون بینی هایی که خدا و پیغمبر فرمودن چگونه دارد تحقق یابد با تیش زدن به ریشه دین و با کندن پی و اساس بنای ایمانی انقدر فریاد زد اونقدر صداکاری کرد تا چهیله این راه شد دومین شهره که کف زهرا سلام الله علیها و زهرا کوسهوش امیر علی علیه السلام است از خطبه شخشقیه دیرو درد کردم که دیگه علیه با آن افت کلام امام محصومی که در یک شرایط حاد تاریخی به سر میبرد و مجبور به است در این حال میگوید شکم که در حجوم به بیت المال و برای سیر کردن شکم خود همه حقایق دی اینی را کنار می به مانند اون شطران زرستهی که در زمستان از علف خشک در استبله ها و حال در فصل بهار به یک مزرعه سرسبزی رسیده حجوم آورده است برای چریدن و اونقدر ولعه در چریدن دارد که از مدفوع حیوانی هم که در این علف زاره است نمی گذرد دیگه چی بگه عمیق المؤمنین؟ این گونه پس بودن و هجوم آوردن نامه شدد و دوی البلاغه که اشاره کردم فرصت نشد امروز ارز کنم و شواهد دقیق و حساسی رو الله اگر وقت شد امروز نشد از فردا از منابع دست اول اهل سنت که حتی گاهی داده خودشونم بلند شده که ایوان این چه وقتیه این چه اسلامیه این چه قرآن و دین و مکتبیه که اگه بنابرای شده این صورت به خواهد جلو بره نامه 62 نامه یعنی ال مؤمنینات به مردم مصر شما توجه دارید هم در تاریخ و هم الان در بین جوامع مسلمان اون زمان همان گونه که ایرانی ها که مسلمان شدند جزء ملل متمدن و ثابته فرهنگی بودند مصری ها که در اصل قبطیان مردمان با سابقه فرهنگی طولانی و اطلاعات نسبتاً وسیع و اهل فکر هن. الان هم شما در میان مذاهب اهل سیره مختلف اهل سنت اهل سکر و قلم اکثران در مصر پیدا می شود مردن روشن نسبت به بقیه ملل عرب و فرق مختلف اهل سنت اند امیرالمومنین وقتی روی سخنش با این مردمه انگشت کجا گذاشته اجازه بدید با مقدمه کنم بنده اگر الان وقتی میخواستم بیام محضر شما تو خیابون یک سحنه قمنگیز مثلا اجتماعی رو در برخورد چند انسان به یکیگر دیدم وارد دبستانی بشوم برای جمع دبستانی ها بخواهم درد دل کنم که امروز صحنه قمنگیزی دیدم به اندازه درک و سطح اون مردم بیان میکنم اما با یک جمع متفکر نویسنده اهل فکر اهل یک ان ارزشمندی هایی که در جامعه میخواهند ایجاد کنند باشند میگم پایه ریشه عامل این خلاف اخلاق در جامعه بروز می کند چیست که این گونه شده یه مزار ریشیابی تر وقتی حضرت به مردم مصر نامه می که روشن تر و اندیشمند ترن به اونها ببینید چه مسائلی رو تذکر میده این دیگه نامه حضرت یعنی اگر بعضی ها می شیطنت کنن میگن در خطبه ها ممکنه یکی که افتاده باشه چنین و چنان شده باشه که بحث ما پس بل دارد نام نگارش خدا حضرت که تاریخ ثبت کرده و من از شرح نحجل بلاغی ابن عبدالحدی جلد هیفده و هیجده که این دوره بیش جلدی سرده مجلد در این مجلد نهام از قسمت هیفده هم جزه هیفده اشاره می که ابن عبدالحدید میگه نمیشه منکر شد که این مطلب را علی نوشته و مردم مصر و منظور علی هم که بوده و میخونم و و اونها چه میکردن اما در این حال میخواد شیطنت کنه یه جوری بیاد قضیه رو لوش کنه که در طول تاریخ تبرهه کنه اونها رو که اون رو هم انشاءالله بعد میکنم خدمتتون از جلد دوازده دهم این شرح نعدل بلابه که اونجا چیکار کار کرده در نامه 62 و دو امیر المؤمنین میفرماید اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعْتَ مُحَمَّدًا س نظیرن للعالمین و محیمنن علال مرسلین اما بعد بعد از مقدمات خدا وقت پیانبر اسلام را مبعوط کرد نظیری باشد برای جهانیان ای باشد و محیمنن علال مرسلین شاهده بر اون که همه فرستاده های گذشته داشتن تکمیل کننده و تنظیم کننده نتیجه سمری همه انبیاء گذشته سلام ما مژا علیه زمانی که خداوند این پیغمبر رو برد این پیغمبر گذشت از دنیا رفت سلاز المسلمون علی امرن بعده تناز المسلمون الا امر من بعده همینجا اشاره میکنم عنایت داشته باشی باز هم اگر قلمهایی به کار افتاده و اگر زبانهایی به حرکت در آمده که این عوامل عوامل تفرقه است و این حرف ها مال شیعه صفوی است و بعد از دوران صفوی این حرف ها رو دامن زدن و می ملت مسلمان را تعالی و پیشرفت رفت باد با باد سخنت گفتن و انحرافات گذشته رو به میان آوردن به اتحاد مسلمین ضرب می زند. یک امیر المؤمنین تون آوش و خودش هم بیان می کنه. دو امیر در تاریخ اسلام بعد از بهلت پیغمبر میگه گه سفویه سال هزار سال بعدشه سه آیا اگر اختلاف از حق کردن و اختلاف از باطل فرق دارد یا نه اینن در تاریخ تبری نقل شده وقتی که پیغمبر اسلام بودها را در میان مردم فریاد برآورد حق کدام از پیروف قراران کفار قریش آمدن پیش ابوطالب عبارت اینه ابوطالب به برادر زادت بگو ما مردمی متحد و به هم پیوسته بودیم در میان ما تفرقه ایجاد کرد راسته پیغمبر در میان ما تفرقه ایجاد کرد تفرقه نسبت به چی نسبت به باطل همونطوری که حضرت ابراهیم در میان قصبرستان تفرقه ایجاد کرد به نقل قران کریم وقتی یک بار چه بود میفرستیدند فریاد بر آورد نمیخوانید بود بفرستید یه عده که متوجه شدن از اونها داداش وقتی جدا شدن یعنی از باطل جدا شدن اینجا چه باید کرد باید بقیه ای که در باطل موندن متوجهشون کنیم تا اتحاد به حق پیدا کنن نه اتحاد به باطل یعنی اگر ما بگوییم یا رسول الله مردم مکه بتو میپرستیدن متفق بودن شما سخن از خدا مطرح کردید دو دسته شدن حالا که باقی از پرست‌ها ستگاه بر نمی‌دارند این ایده خدا پرست و هم برگردون با اون بت یکی شوند متحد شوند این با عقل و شر جور در میاد لذا این نکتر رو خود امیر داره بیان میکنه ما تکلیف داریم حق رو روشن کنیم و آنانی که علاغمنده به حقا حق رو بشناسن لذا می فرماید تناز المسلمون على امر من بعده مسلمون شروع کردن تنازو درگیری اختلاف نسبت به امر دین بعد از پیغمبر الله قسم می علی به خدا قسم ما یلغا فی روحی ولا یخت رو به باری به خدا قسم از به قلب من خطور نمی کر. تو ذهن من نمی اومد این ما توضیح بدم یعنی چی نهی که پیش نمی گردم این در قرف گفتگو یعنی انقدر این موضوع شکفتنگیزه انقدر تعجب آبره که در میان مسلمونا پیغمبر این همه گفت خدا گفت با این همه توضیحات و روشنگری ها برای من اونقدر تعجب آور شد که چی انال عربه خوز اجاز الامر من بعده که این مردم عربی که دور پیغمبر رو گرفن بعدت پیغمبر اعجاج و انحراف تا این مقدار ایجاد کنن چی بوده که علی با سیغه یه قسم میگه برای من علی علی که منافقین رو میشناسه علی که اونها رو شاهد چگونه عمل که میکنن در این حال میفرماید برای من خیلی تجبابره تا اون اندازه که من فکر نمی کردم اینا کارو به اینجا بکشانم ان اهل بیتی هی ان الارابت از اجهاز الامر من بعده ان اهل بیتی هی. که این امر عظیم رو از اهل بیت پیغمبر جدا کن علی بیت پیغمبر رو کوتاه کنن ولا انهم منحه و انه انی من بعده من فکر نکردم بعد از پیغمبر تا این مقدار میخوان هوا اقرا از اینها جدا کنن اونها رو باز بدارن سما راعنی منو و نکرد منو مجبور نکرد الا انسیال سیال علا آ فلانانه یا با او ن او خود فلانو بدونید اینجا باز با طرقه. منو مجبور نکرد سکوت کنم در خانه بنشینم چی؟ این همه مردم حجوم بردن برای بیعت با کلان بهقس برمای دو دکتر رو یک علی میگوید من چ این مقدار فکر نمیکردم مردم اینقدر هست. این جور؟ با این جمعیت با این گروه برن حجوم ببرن و می دونستن ما کی هستیم و کی هستن خب حالا که اینجوریه من چه بکنم من چاره ای ندارم لذا مجبور شدم سما و همسجت و یده دستم دستمو کشیدم کنار موندم حتی رأیت و راجعتن ناسبت رجعت ان الاسلام تا اینکه دیدم واق مردم دارن از اسلام برمیگردن دیگه اسلامی می نمون من علی درست میبینم می همه ی ها واژگون شد رفتم تو خونه نشستم ولی تو خونه نشستم دیدم دارن از اسلام برمیگردن من چی بکنم حالا دوباره مجبور شدم بیام به اینا کمک بدم تا فعلا اسلام از بین نره تا فعلا از اسلام بمانه ببینیم باید چه بکنیم سمسکت و یدهی حتی رعی فراجع و نافذت رجع از ان الاسلام یدعون الى مهد دین نبی اسمع از زد من دوله میگم نبی میگه اونچنان مردم داشتن از اسلام برمیگشتن یدعون دعوت میکنن میخوانن انشالله فردا از منابط دقیق یکی کش رو امروز ارز میکنم دقیق دارن یک کاری میکنن که مردم رو دین پیغمبر رو محض کنن یکی که اینجا بگم محض دین پیغمبر مگه علی نعوذ بالله احساسی شده علی اینجا عاطفی شده میخواد که اینا دارن دین پیغمبر رو محض میکنن از نظر من شما یه شیعه که کلام مولا حجت تمام از نظر یک غیرشوی از نظر اهل سنت، یه روز گفتم حتی عبدالب ابن عبد العزیز تو ساله و و و که حالا با هم بحثش نشن خودشون اعتراف به نجل بلاغه دارن آقا یه جامعه شناس میره 1 4 کلاس راجب جامعه شناسی مطالعه میکنه میاد بعد یه نگاهی به جامعه ما میکنه اظهار نظر میکنه شما به اندازه اطلاعات جامعه شناسیش به نظرش احترام میگذارید علی نعوذ بالله به اندازه یک جامعه شناسه شاهد و ناظر بر تاریخ اسلام در صدر اسلام چه بگیم علی دان اینجوری بیان میکنه میدونید چرا میخوان علی رو کنار بزنن چون علی دقیق مطالب رو میگه کتی که دقیق مطالب رو میگه به ضرر رندان تمام میشود رندان و شیاطین بر اینکه که ضرر نکنن میگن اینا رو کنار بزنید لذا چه میکنه در صحیح بخاری از از کسانی که مده قاتل رو کرده ماده ابن مجم رو ثقه می داند از او روایت نقل می کند از امام صادق روایت نقل نمی کند او را ثقه نمی داند در تمام صحیح مسلم و صحیح بخاری بیش از پنجاه هزار روایت از ابو هریره نقل می کند که خود اعتراف دارد ابو هریره پول می گرفت و حدیث می کند از علی پنجاه حدیث نقل نمی کند آخه بشر منصف آقل انسانی که یک جو شرافت و دیرست داری این روح حد انسان چمه دارد درد میاد که علی به اندازه ابو هم نمیتواند از پیغمبر روایت نکوند که میگی علی نگه ابو حریره بگه چرا؟ چون علی اگر بگه میگه شکنبارگان فرصت طلب دنیا خواهدن دیر حیثمبر رو مه کنن و دنیا که میخواهند دنبال اون دنیا طلبن برون این حرف علی به ذره رو به لذا علی سخن نگوید <تصفيق> علی هم تو بازار کوفرت میشه کومیل میگه نشسته بودم <تصیح> دست منو گرفت آه کومیل برای این بیرون شدی سمین حب سزنم ایران برای دلت مولا چقدر درد بشید خمیل بیا بریم بیرون شهر کمی باید حرف بزنم حقائق در این سینه جمع شده تنگی می کند نمی بینم افراد لایقی که برای اونها بیان کنم بیا بشین کمی برات بگم شاه می کند در دل شاه می کند و با شاه در دل می نماید از جورجی زیدان مسیحی سوال کردند چه باعث شد که شما کتاب نوشتی الامام علی شعوت الادالت الانسانی مسیحی هستی در مسیحیت هم شیلی همچین قدرت اونچنانی مذهبی هم نشون نمیدی به گریه افتاد گفت علامه امینی رحمت الله علیه، وقتی الغدیر در اومد مجلداتی شو بری من فرستاد. یه نامه هم نوشت گفت آقای جورجی زیدان شما وکیل دادگستری هستی دکترای حقوقی نه شیعی نه سنیم کار وکیل دادگستری دفاع از مظلوم و حق را حمایت کردنه ما یه دعوایی داریم با برادران اهل سنت منصر حق علی ما میگیم علی حق از باید امروزه جهان به علی برگردد اونها میگن نه این حساسیت رو نشون ندید اینم پرونده ترسادم کتاب القدیر تمامم باوروی مدرک از اهل سنت است من از چیه چیزی نگفتم شما نگاه کن نظرت رو اعلام کن میگه من دیدم دور Yu avon یک آدم یک مذهب حتی غیر از مذهب من نامه ای داده از من درخواست کمک به حض کرده رشته منم اینه گفتم بده کتابا رو دقیق روی خونم کتابا رو دقیق خوندم علاقمنده به مطالعه راجع علی شدم مطالعه کردم دیدم شکل من که به کالت دادگستری دفاعی از مظلومه ایجاب می کند از علی دفاع کنم چون مظلومتر از این آقا من در عالم بشریت خراف نداره <تصفيق> علی وقتی فریاد میدنه بعد از پیغمبر ببین چه کردن اون وقت بعد, بعد از 14 تو مملکت تشیع توی ایران این همه خوندادن دادن ها قلم ها نوشت ها کتاب ها صحبت ها به خود حق بدهن بگوین تشیع چی نه بنده با کمال قدرت از زبان شیعه ایران عرض می کنم چون خوندن ملت ایران ملتی که جانش به خون علی و عال علی بزد ما افتخار میکنیم که وقتی حلال محرم رو می بینن می سر کلاس دانشو می بینیم دانشو می دیم دانشو یه پاس مشکی بوشیدن می تو معافل کوچه با بازار تو یه که کوچه اطراف منزل ما پنج شیچ تا داربستی بچه ها بستن و خیمه زدن و صبح و زور و شب بچه ها, ها دور میشن تو سرشون میزنن میگن یا حسین یا حسین ما تمام وجودمون یکی از آقایون میگفت در حرمه حضرت اول پتر حسنان بودم یه خانم ایرانی دیدم بچه تو بغدشه یک لغمه دستشه لغمه رو میکشه به کف حرم ر گفتم ما در این بهداشتی نیست گفت که میخوام من از افواقی که پدایی مکتب حسین بوده به این هم یاد بدم. ما پدایی مکتب اینها بشیم شما میگید علی حق نداره بیان کند بعد از پیمنبر چه شد این مظلومیت علیه چه شد بذارید از زبان علی مظلوم از زبان نوی اهل سنت بگم درد نیش هنوز تموم نشد در عرف مولان بخوام بخون نیست؟ بگم علی اینجوری معرفی کرده به من بگن کافی نیست بگم خیلی خوب بگم از دانشمندان بزرگ اهل سنت بگم که اونام گفتن این خودش درده این کتاب ملل و نحل عبدالکریم شهرستانیش حضرگان علما اتاتی تشکدارن میدونن عبدالکریم شهرستانی متوفای 548 اجری قمریه 548 اجری قمری نزدیک ازافتون 900 خورده ای سال قبل این آقا از دنیا رفته سه جلده ملل ملالون حال ملت ها نحل ها گروه هایی که بوده است اینا رو بخواد معرفی کنیم در این سه جلد انقدر علیه اسلام هم شیعه هم کرده انقدر علیه شیعه هم کرده که بعضی و اگه من بخونم شما تحمل نمیتونید بکنید ملحب. یک ضد شیعه قویه در عین ای هات این آقا در جلد اول ملل و نحل صفحه شش میگه اول چیزی که باعث شد در دنیا موجودات مخلوقات اختلاف بی چی هست؟ سال مقدمت و سال سفه شش سی اول شبهتن وقع اصل خلیقه اول شبههی که در خلق ایجاد شد تا مخلوقات را موجودات را از اون یک پارچگی و این به صلاح اتحاد در مسیر خدا بازدارد و من مظهر آفل اول و من مظهر آخر در اول در آخر باعث شد چی بود؟ احل. آن عقل شبهات بگذاری خلیجها شبهت ابلیس لعنه الله و متضرها استبداد او به رای، استبداد او بر رای، فی مقابلت النصر و اختیار الهوا فی معارضت الامر فقط دادم دادنی. حالا پرداهمی از ایشون رو. ان شاء الله از ابن ابی الهید مفصل میخونم سه ساعت من بعدی در جلد دوازده. و هیزده چکار کار کرده این چی میگه؟ میگه اول امری که مطرح شد اجتهاد ابلیش بود در مقابل نفس پروردگار بر مبنای خود رعی و هوای نفس ابلیس. کی بود؟ خدا فرمون و ازغن لازم ملائکت اسجدو لآدم فتسجدو الا ابلیس اوا، رفتک بر وکان امنال کافرین اولیش گفت چی؟ یعنی در مقابل امر پروردگار تکلیف چیه؟ تسلیم به جای تسلیم شدن چه کار کرد؟ شروع کرد نظر شخصی رو به دادن اه من که تو بالاترم که خلق تنی؟ من نار خلق تاو؟ من تین انا خیرون من من چگونه از همینجا عبارت و دفت بفرمایید و مصدرها آمل صدور این اصطلاف در ابلی چی شد استدادهو به رعی این به رأی و نظر خودش آفشاری غلط کردن تیم مقابلت نفس در مقابل نفسی که خدا قرار داده بود و افتیار حال حواثی معارضت الامر حوای نفس خودش گرفت با امر پربردگار معارضه کرد و استقبار رو بلماد دست و استقبار بزی در اثر این که اون ماتهی که از اون خرص شده است یعنی من از آفشم رو پس از اینجا شروع شد آقای عبدالکریم جهرستانی میخوای ملل و نحل دن بیشی داری رویشه اختلاف رو بردرسی میکنی چیه هوای نفس را گرفتن نظر شخصی را گرفتن در مقابل امر خدا نظر خود را بیان کردن درسته صفحه 13 همین کتاب خدا میخواد اتمام حجیب داشه و امل اختلافات الواقع از حال مرضهی و بعد وفاقهی بین صحابه رضی الله عنه صحیح اختلافات آن اجتهادی كما قيل كان کانه سر ذهن مراسم الشرع و ادامه مناهج، مناهج دین و اول تناظر فی مرزه علیه السلام، فی ما رواه محمد ابن اسماعیل بخاری، با اسناده این عبدالله ابن عباس قال لما اشتد بن صلی الله علیه وسلم امیه مات فيه قال ایتوني بدواتن و در کتاب الله تزل و بعدی فضال امر این رسول الله بد غلب حلوجه حضبنا کتاب الله و این اجتهادی بود که عمر کرد برای افردین اون دقضه برمایید ببینید آقا هر کردم چند روز ترارن دارم میگم من یه بچه مکتبشی به انجازه یه بچه مکتبشی حرفامو میخوام تمام با سنت بگم بزرگان ستشون بالاتره آقا تو قبول داری بانوانی که این کتاب در تمام مجامع و محافل علمی کتاب درسی حتی در دانشگاه ها والواحد کتاب علمی شناخته شده به حساب نیست. این آقایی که ضد شیعه هست و قد تعصبی نسبت به اهل سنت دارد میگه اول اختلافی که در خلق عالم ایجاد شد اجتهاد ابلیس در مقابل نص خدا بود اول اختلافی که در اسلام ایجاد شد اجتهاد عمر در مقابل نص پیغمبر بود اما اونجا میگه اجتهاد غلط اینجا میگه میدونی را اینا اجتحاد کردن مثلحت اندیشی کردن گفتن اگر به عرف پیغمبر گوش بدین به ضرر جامعه در رزقه بکنید. این محو دینه این محو دینه اگر علی میگه من دیدم دارن یه کارایی میکنن که دین رو دوباره میخونم اینن کتابی که دو سال قبل تو تهران چاپ شد یه سال و نیم قبل تو تهران چاپ شد مطلب رو در قالب یک شیعه مدافع کتابو بعد میارم میخونم بی اسم البته عین نمیارم میذارم وقت بونون یک کتاب به جوانای ما میدن با, با کامل تاسف در نمایشگاه کتاب پارسال ما روزنامه نوشت اونم دارم پورتی این کتابی که فروخته شد این کتاب بود چرا تو نمیدونن تکلیف بنده و شما چه داد بزنید البته بعد از ما تلفن میکنن نگو میکشیم کو بکشیم اخر ما آرزومون اینه که خونمون در راه اینا بشه. بده داری دار بزنید ندرید حالا فکر کنید ای اگه خیال کردید امثال بنده که بچه هم بزرگتر ما که بالاتر از این الفاظ از این که میخوان طفه‌ی بعضیایی که میخوان با مکتب تشیع بازی کنن رو کنین میترسین نه خور خوندن آه نگاه کنید عبارت رو و اما اطلاعات الواضعه سی حال و بحج و فاتحی بیند صحابه صحیح اختلافات اجتهادیه چماقیل اجتهادها مختلفو هون اینالا عرض میکنم اجتهاد در فروعات اولا نه در حصول ثانیا اجتهاد در مقابل نفس یا اجتهاد در جایی که نص نیست در جایی که صریح پیغمبر میگه کاغذ و قلم بیارید بگم چیزی رو که بعدش گمران نشی میگه نه لازم نیست میگه خب میخواد وقت توضیح کنه این اختلافات رو کمال قیله کانت بر از ها اضامت و مراسم شرع و اضامت و مناهج دین مناهی هست چیه؟ بر این بود که میخوان دین تداوم بیابه نمیذارن پیغمبر بلیسته یعنی نوشتن پیغمبر باعث ادامه دین نیست اجتهاد عمر باعث ادامه دینه این دین را ما نمیخواهیم و دادم میزنیم ما اون دینی رو میخواییم که پیغمبر میخواد ادامه بیابه اون کدوم دینه همون دینه, هم دینه. که پیغمبر وقتی نگاه به حسین میکنه یا حسینون من منی و انا من حسین و انا من حسین همون دینی که پیغمبر وقتی نگاه به علی میکنه میگه انت منی به منزلت رعتی من بدنی تو برای من مثل سر برای بدنی اگه سر رو بخاند بدن بگیرن بدن یک لاشه متعفلی که باید دفنش کنند تو رو از دین من بگیرن دین اینجوری میشه که انشالله فردا برای تون خواهم خوند و لال مفصل از منابع خواهم کرد که چه کارایی رو گفتن اجتحاد زنا کردن گفتن ما اجتحاد کردیم این نداره از کتابا میخونم براتون رو قطعه کردن گفتنی چرا مسلمونی میکشید گفتن اجتحاد کردیم اه؟ تمام دین و بازی چه بگیریم مولوان اجتحاد ابلیشان اجتحاد کرده خودتا هم که میگی و چرا ابلیش رو میکنیم افلیش هم اشتهاد کرد در مقابل خدا بعد مبنی این که ای آف این آف اینجوریه اینجوریه پس این در مقابل دین خدا ایستادنه حالا عمیق ریه السلام تو نامه داره به ملت مصر میگه فهمتک تو حتی رأی تو راجع از الناس غد رجع از ان الاسلام ید اون الى مهد دین نبی و خشی تو پرسیدم این لم انصر الاسلام و احله اگه به اسلام کمک نکنه و همون یه ادهانده که هم که باقی منده فعلا، واقعا دلشون بخواهد مسلمون بشن اینا رو یاری نکنم ان ارافی حسل من او من چکون المصیبت بهی علیه اعظم من فوت بلایتکم اللتی انماهی متاع ایام غلائل دیدم اگه یاری نکنم اگه نیا میدون اگه توضیح ندم یک سلمهی یک شکافی یک درگی یک رنجی در اسلام پیدا میشه یا حضم از بین میره که مصیبتش خیلی سخت تر از این مصیبته که حالا فعلا اینا منو کنار زدن منو کرار زدن من به خاطر خودم که نمیگم به خاطر دین میگم ولی مگر یک کمی هم جلو نیام دینم کنار میزنن من جلو برم خلید رو در باشی میکنن حالا دیگه به این سرعت دیم رو کنار نزنند اگر چه زمین سازی میکنن برای معاویه و برای یزید که اونها بیان ولی منم زمین سازی میکنم حسین و حسن هم رو میگذارم گونه که زهران صلی های کاری اومدت اومدت چه؟ خطور ابن قتیبه م... سنی نویسنده کتاب امامت و بل... ال و سیاست بیان میکنه وقتی علی آوردن شمشیر بالا سرش گرفتن عبارت ابن قتیبه اینه گفتن بیعت میکنه بالا ان لم افعل از ابق و میگه جلدی یک سفه چارزن کتاب عظیم اهل سنت چاپ مز تفصیل از هر علمای از هر ایلم از فمه بیت نکنم چه میکنید؟ قال عمر و الذی نفسی بیده را با اونغک به خدایی که جانم به دست گردن رو میزنم قال علیون علیه السلام از حق تل الله و حقا رسوله میخوای عبد خدا و برادر رسول خدا رو بکشی حالا عمر اما عبدالله و نعم اما اکر رسول هی فلا تو روی عبد خدا قبول دارم تو رو برادر رسول خدا قبول ندارم عبوبت ساکتون لا یه تکلم عبوبت ساکت شد سخنی نمیگفت و بعد از لحظاتی گفت فعلا علی رو آزادتون نمیگه چرا؟ نمیده بگم حالا علی را آزاد کردن چی شد؟ شرایش ایشان تبع شیعه از قول امام صادق براتون میگم میگه علی را آزاد کردن و لحق الی قبر ندی یعنی علی را آزاد کردن اومد به طرف قبر پیغمبر و اومد یونادی و یسی ندا در می‌داد و سیعه می‌زد یبنهم ان القوم صدعونی و کادو یقتلونی کدام آیه رو خون؟ آیه‌ای که وقتی حضرت موسی رفت هارون رو جای خودش گذاشت حضرت موسی برگشت به سامری مرد قوم رو فارسی چه گوساله قرب شدند هارون رو در بغل گرفته فشرد برادر این شبدیه هارون به گریه آمد به حضرت موسی گفت يبنهم ان القوم يصدفوني و كادوا يقتلونني علی رد پیغمبر رو در بغل گرفت و گفت نام، ان القوم يصدفوني و كادوا يقتلونني یعنی یا رسول الله ترى قبر بردار سامری های این امت رو ببین و گوساله پرستی که در این امت ایجاز می کنند کن اما چرا اونجا علی رو آزاد کردن؟ سلمان فارسی میگه من کنار مولاد ساکت ایستاده بودم یه وقت دیدم ولوله افتاد ولوله چی بود؟ قبطن زهرا وارد محجب شد زهرا دیر بغلش گرفته بودن؟ ما وارد شد رو آزاد می کنید یا نفرین کنم؟ فلمان میگه به خدا عقصم تا زهران فرمود نفرین کنم دیدم مرسید داری می لرزه. علی از زیر شمشیر سرش کمی آورد بالا فرمود زه. سلمان زهران را در یافو نفرین نکنه فلمان میگه من بدو بدو اومدم خدمت بیوی رفت کردم بی بی جو آقا فرمود نفرین نکن آقا فرموده چش بر میگردم خونه رفت خونه دیگه بیرون نیومد ولی خونه رفت چه کار کرد فکر میکنم تا رفت خونه برده اینجا بیا بیا چیه میره گروه چه به جا یعنی مادر باید آماده بشی سراتونو بالای نی ببری این مردمی که من دیدم اینو امت اسلامی که من دختر پیغمبر دیدم هنوز آب خسر پیغمبر خوش نشده شمشیر رو فرق علی میگذارد لینبم تو بیا باید اثیر بشی و خسره بخانی محق دین پیغمبر نبود علی میگه دیدم ای ندارم و ترسیدم لذا صبر کردم اینی و الله به خدا قسم من عدید لول غیت هم واحدن و هم چلا هم چلا الارد کلا ما بالیشون و لطف هستون به خدا قسم اگر من یک نفره در مقابل این مردم بیشتم اونها ها همه با هم دیگه متحد بشن من ترسی ندارم و اوایی ندارم یک تنه با این ها و اینی من ظلالهم الذی هم فیه و خود الذی انا علیحه لعلا بسیرت من نفسی و یقین من ربي. برا فکر نکنی که من شک دارم که من حقا اونا باطلن چیه نهزول بلاخر رو روشتر بخون چیه عبارات خود مولا رو روشتر بخون علی میگه و الله اگر من یک نفر باشم هیچ کم نداشته باشم اونا روی عرض متحد بشن که لومن بیشتن من هیچی نمی کنم ندارم حاضرم و من یقین دارم هم بر مبنی اون الهامات که درونی خودم هم بر مبنی اون چه که پروردگار به ما رسونده، ببینید و اینی من زلال لذی هم فیه ول الذي انا علیه اون زلالتی که اونها در او هستن، هستم اون هدایتی که من دارم لحلا سیرت من نفسی و یقینن من رفتی هم با قسارت در نفسم میدونم من حقا اونا باطلن هم خدا گفته من حقا اونا باطلن فقط من ترسی ندارم در مقابل این باطلها بیستم اما می اسلام از به این بره الان این شاگردای کلاس جوری کردن معلمی که گفتم تو کلاس درسارو داد، از کلاس بره ویرون دیگه دو تا سه تا چهار نفر گذاشتم، مقاله به و بعد از این سه چهار نفر بپرسید اما یک رندایم تو این کلاس پیدا شده، می‌خوام این سه چهار نفر رو از بین ببرم. این سه چهار نفر از بین بره به نفسش ای کلاس یه دست در اختیارش میشه. و زیرک اینجا چه میکنه؟ دیگه فعلا مجبورم صبر کنم آروم آروم آروم تا به بقیه بفهمونم گول اون سه چهار نفر رو نخورن. مولاد از خصوه 26 شفرمون نهتون بلاقه دفتر کنید نظر تو لیسلی معینون الا احل و بیکی یه وقت دیدم قیرتن چندهای خودمون کسی رو ندارم و زنان تو به هم ان و زنن تو ان حتی دم اینا رو الان می‌خوام بکوشن. حضرت کشتن ابی نمیر نمی‌کستر. رو می‌کوشن. اینا هم کشتن برای اونها کاری نداره. ولی الان به سلامتی کشته بشن. و رأیت و صبر تو و فلع، نه قضا و فل حلقه شجا. گفتم باید صح کنه. اگه اینا فعلا باقی بمونن تا کربلا درست کنه. اینا باقی بمونن تا کلاس ما باقر ما صادق درست, درست بشه. تا مطلب روشن بشه. حضرت می‌سمعت به خدا قسم من وحشتی نداشتم. ولت تو حت تو. من لحشت نداشتم. ولی چه بکنم؟ و عنی ال ل الله مشت به مشتاق مشتا ملاقات خدا من منتظر مرگم راحت کم و لدااقتی شم به فرقم میذارن میگم فوت رو بربر کرده و لاکنمی عا ان ییت ببینی چقدر روکششن و لاکننی عاط ان ییه امر آاض ال عم صبحها و آ و ها اما می که اینان اختیار این جامعه برای همیشه به دست صفیحان و فاجران بیمتد وقتی اینان اختیار جامعه در دست فجار و صفیح بود مثل هواهی که خلبان ناشی خلبانی کند یا امت شبوت میکنه لذا گفتم باید سعب کنم و لذا سعب کردم و این فجاری که ولیکن نینی اتا ان یلی امر آقه الامت و, و فجاری و یتخذو مال دو دولا و عبادهو خو خولا میدن اینا میخوان مال بیتن مال رو تو دستای خودشون به هم دیگه نو بدن و عباد را برده خود بسازن اینا میخوان عباد رو برده خود بسازن و صالحینه هر با صالحین در بیفتن و فاسقین اجوا زشت ها با هم دیگه متفق بشن فئن من اعمال لدی قد شر و بی حرام تو اینا که شراب میخوره ابن عبد العذید ابن در اینجا نرسیدم باز فردا وقت نمیشه تو این کتاب براتون می خونم ابن عبد العذید دیگه اون بود بله ساختش شراب میخورد او اما بعد به فاسقیه می شهادت میکرد که چیکار کنی دولت میشه شهادت شراب در این حال نماز جمعه خوند حضرته چهارشنبه و اونم حب نداره مگه نکرده ماویه نماز جمعه چارشنبه خونده, خونده، شراب هم خونده، ملت رو هم کرده تمام حرفی هم میگه دیگه خود هم میکنه با این گونه به نظر ما میرسد بعد میاد بگه که که هر دفعه جاییه ممکنه تشخیص بدن اینه بر مبنای تحصیصی که دادی مصلحت اینه این گونه با حکم خدا بازی می کنیم اون وقت اینجا امیرالمومنین چه فریاد میزنه ساین منهم الذی قد شردا فی کمول حرام و جلد حدن فلاسلاق اینا حد میخوردن تو اسلام و ان منهم من لم حتی روز قتل اسلام علی الاسلام الرضائف کسانی الان در مقابل من ایستادن میگن حق با ما اینا مسلمون نشدن مگر به خاطر پولی که بهشون بدن به خاطر پول و حدایات که بهشون بدن مسلمون شدن حالا به من علی میگن تو مسلمون نیستی برو کنار ما آقای اسلام را پیش ببریم انساق الاشلاف بلازوری این ازول است؟ باز برم از سنی بگم امسا باز اشراف بلادوری میگه وقتی اومدن به در خانه علی زهرا سلام علیه ها اومد در در امسا میگن اینا رو آخونده ساختن اینا رو جرس برو درس بخونم او جا برو کتاب بخون ابن قطعیبه 1200 سال قبل نوشته بلازوری عالم قوی اهل سنت و انصاب و اشراف میگه وقتی اومدن در خانه علی چاستم سلام الله علیه آفر بود میخوایید خانه من را آتش زنید عمر گفت آتش زدن در خانه شما از حفظ دین پیغمبر مهمتر نیست. آتش زدن در خانه شما حفظ دین پیغمبر مهمتر نیست یعنی ما فصل تلوار منافقین شراب‌خاران آلودگان دنیا دوستان شما اهل بیت متطهر را که پیغمبر نه ماه بعد از نزول آیه تطهیر به نقل تمامی منابع دست می‌داش در خانه شما میگم از الصلات از یا اهل ال بیت انما ما یرید الله یذھب عنکم اهل اهلل بیت و یطهرکم تطهیرًا شما حالا اینا شدن ما از بین برنده و شما شدید محافظ دیر پیغمبر به قیمتی که خانه زهرا رو بازش بکشی؟ و زهرا میگه من حسین دارم، یک کربلایی برات اون درست کنه، حسین من زینب دارم، یه خطبهایی بکنه تو کوبه بازار شامی براتون درست کنن یک ونیومیت تاریخ بگذارن تا مردم بفهمند که شماها کیا هستید و براتون معلوم بشه و باید تو این خانواده همشون سیمون تیزده ساله امام مجتبی، وجود مقدس قاسم ابن لفظن خب اونا که اینا رو من بچه که چهار کلمه اینجوری بفهمم اون امام راضدان خاندان رسالت و وحی که وضعیشون معلومه که چگونه؟ امام حسن مجتبی شب جوونا گفتم گفتم یه معلم مثلا فرض کنید چند تا شاگرده خیلی خیلی خوبه، قوی دلسوخته‌ای داره، خیلی امید داره که برای آینده مثلا ان شاءالله این شاگردا بیان رو کار بیان خدمت کنن، بیان چه بکنن، برای این شاگردا خیلی ارزش قائله. یه وقت بینه این شاگرد خدای نکرده سرطان گرفته. چی استاد چه بهش وقت میذاره مینانه، ناله میذاره میگه خدایا یحم زحمت کشیده بودم، یه شاگرد قوی، یه خوبی بخواست این یه کارایی بکنه نه به خاطر شخص خودش به خاطر اون اهدافش امام حسین از حضرت علیه ازبر چه امیدی داشت؟ از حضرت قاسم چه امیدی داشت؟ اینا آلالا هم اینا هر کدوم باید جامعه رو پر از نور کنن گل وجودشون باید جامعه رو معثر کنه ببینه این جامعه آدوده هست که 13 سال شمشی رو سفر بگیره بره به جنگه ای وای جامعه که وقتی که دل هستند زره پوشیده سپر برداشته شمشیر هنوز رسقد اونقدر نیست که اینا رو تو بدن کاملا میگه بیش از اندازش یه مقدار یعنی ردار رو زمین کشیده میشون وقتی اومد جلو عمو تا چشم امون به او اختار درست کرد تو گردنش تو تایی اونقدر یک ازن هر دو قلبش گردن اینی که مقاطم داره به هونش اومدن با امون جامنم این من 13 ساله و همینم کار به اینجا رسیده علما بشریعت رو اینجور تنها گذاشتن این دور از انصاف که دیگه منم آرام بنشینم امام علی السلام اول فرمودن عمو جان نمیشه شما باشی عمو جان بابام سفارش شما رو تو همون بچگی به من داد توطالشه باباش از دنیا رفته چون همه کربلا رو تذکر میدادن اوج برخورد این دو جریان اوج برخورد این دو جریان جریان باغیان و یاقیان جریان صالحان در دنیای اسلام اوج و بنابراه همه کربلا رو هیبرخ میکشیدن برای اینکه معلوم بشه بابام گفته کربلا جعبوی حسین فراموش نده عمو جون برو اومد میدون شمشیری به فرق قاسم زدن فرد شکافته شد اعتدای ناله قاسم بلند شد عمو جان منم رفتن میجان امام حسین علیه السلام صحنه رو در نظر بیارید مجسم کنید یه عمومه امام حسین برادری مثل ماه مجتبا با اون عرضش ها بچه از دو سالیگی تو دامن ماه موتین بزرگ شده حالا شده 13 سال شمشیر به فردش اومده امور رو به کمک می‌طلبه، طلبه امون هم نمیتونه کارش بکنه خود اصلت برمودن چه تم از این برای من سنگین تر که تو کمک بخوای و من نتونم کمکت بکنم میگه ماه موتین خیز بردا اومدید و خواهده به قاسمون شمشیری زد دست بخواه قاسل قاسم بریده شد او نعرض است برای کمک قاسل حسینی یه دفعه با اتباه جو آورد یه یا با صدای قاسم برند شد همون جا زیر سمت قاسل خونه ها هم خورد